روش تسخیر شده هوا کاملا روشن شده بود که بدن ترکوفسکی چرخ زنان از روی قرنیز پنجرش رد شد به سخف شیشه یه تازه تعمیر خورد آن را به میلیون ها تراشی ریز شیشه تبدیل کرد و با دست های باز در وضعیتی مضحک و غیر عادی روی زمین سنگ فرش حیات افتاد تللکوسکی بی کاس به یک زن تبدیل شده بود. بندهای شرط و های لاستیکی جوراب شلواری از زیر لباسش که در اثر سقوط تا کمرش بالا رفته بود پیدا بود. آرایش صورتش کامل و بیعیب و نقص بود. اما کلاگیسش کش شده بود و چشم راست و قسمتی از پیشانیش را پوشانده بود. همسایه ها به سرعت جمع شدند. سرایدار و موسیوزی، وسط جمعیت ایستاده بودند و معیوستان سرشان را تکان میدادند. مسیو مسیوزی گفت عجب جوان بد اقبالی دیروز تصادف اتومبیل امروز به اعتمال قوی ضربه روحی ناشی از تصادف باعث این کار شده باید زودتر به اورژانس خبر بدیم کمی بعد یک اتومبیل پلیس و یک آمبولانس در مقابل ساختمان توقف کردند. راننده اتومبیل پلیس که از دوستان قدیمی موسیوزی بود، دستش را به طرف او دراز کرد و گفت: مسی، که شما خونتون را برای خودکشی اجاره میدید. موسیوزی با لحن انگیزی گفت: باورتون میشه. من تازه تعمیر سقف شیشه ای رو تمام کرده بودم. دو پرستاری که در آمبولانس بودند، با عجل مشغول پایین آوردن برانکارد شدند یک دکتر هم همراهشان بود به محض آماده شدن پرستارها همگی به طرف بدن بی حرکت ترکوفسکی به راه افتادند دکتر سرش را از روی نفرت و انزجار داد. قرولوند کانان گفت اجاب بال ای. این لباس ها برای خودکشی تنش کرده ناگهان در برابر چشم‌های شگفت‌زده و متحیر همسایه‌ها، دکتر، پلیس و پرستارها، بدن به حرکت درآمد. دهانش باز شد و خون بیرون زد. آروارش به حرکت درآمد و گفت: این خودکشی نیست. من نمیخوام بمیرم. این قتل امده. موسیوزی لبخند لبخند ای زد. بیچاره حذیان میگه دکتر که حس انزجارش بیش از پیش شده بود، سرش را دوباره تکان داد و گفت وقت خوبی برای تصمیم گرفتن پیدا کردی. اگه میخوای زنده بمونی، نباید از پنجره و اتاقت بپری بیرون. این بار دهان ترلکوفسکی با لحنی که بیشتر تحکام آمیز بود گفت دارم به تو میگم این قتل عمد بود. منو هل دادند. من خودمو از پنجره ننداختم فاید. دکتر موافقت کرد. خیلی خوب باشه. قتل عمد بوده. پلیسها خندیدند و یکی از آنها گفت: لابد وقتی فهمیده حامله است از پنجره پریده بیرون. دکتر که ظاهرا از این شوخی خوشش نیامده بود، به پرستارهای اشاره کرد بدن را رو روی برانکارد بگذارند. ناگهان ترلکوفسکی با نیروی قافل گیر کننده ای آنها را عقباند و فریاد هیستریکی کشید. بهتون اختار میکنم، کنم. به من دست نزنید. من سیمو و شور نیستم. در حالی که تلا تلا می خورد و می لرزید هر طور بود روی پاهایش ایستاد و سعی کرد را حفظ کند. ناظران که مسهور این منظره شده بودند جرأت نمی به او نزدیک شوند. ترلکوفسکی با لکنت گفت خیال میکردید همه چیز اونطوری که انتظار داشتید پیش میره فکر میکردید من صاف و ساده و درد سر میمیرم ولی خوندید. من یک مرگ کسیف و هلا تحویلتون میدم من خودکشی نکردم من سیمون شول نیستم و این کار شما قتل عمده یک قتل هم ده هلاک اینجا رو نگاه کنید این خونه خونی را که در دهانش جمع شده بود به زمین تف کرد این خونه بره و من حیاتتونو رو با خونم آلوده کردم منوز من نماردم نمیتونید به این سادگی کلک منو بکنید ترلکوفسکی مثل بچه ها هق دکترها و پرستر را با احتیاط به اون نزدیک شدند دکتر گفت کافیه دیگه بیشتر از این درد سر درست نکن ما میخواییم ازت مراقبت کنیم فقط باید سوار آمبولانس بشی تلرکوفسکی فریاد زد به من دستازنید؟ زنید خوب میدونم پشتمون یونیفورم های سفید چی قایم کردید حالا از شما و از آمبولانس سفید رنگ به هم میخوره هیچ وقت نمیتونید اومبولانسو از خون من پاک کنید اما تو آدم کشید قاتل ها مثل یک آدم مست و پاتیل تلو تلو خورم به طرف تاغی راه رو رفت و از حیات خارج شد همسایه ها که انگار با یک شبه روبرو شدند وحشت زده از سر راهش کنار رفتند و راه را برایش باز کردند. در میان خنده و گریه، دست چپش را که زخمی شده بود بلند کرد و خونه دستش را رو روی همسایه ها پاشید. بعد گفت: «اوه کثیف شدید؟ معذرت میخوام این خونه منه؟ شما باید تمام خونه منو از بدنم بیرون میکشیدید تا نتونم آلودتون کنم. فراموش کردید درسته؟ جمعیت او را با حفظ یک فاصله احتیاط تا ورودی راه را دنبال کرد پلیس ها نگاه استفامامیزی به دکتر کردند اگر لازم بود به زور متوسل شده و او را دستگیر کنند دکتر سرش را به علامت منفی تکان داد ترکیبی از خون و اشک در گلوی ترلکفسکی جمع شده بود فریاد زد اگه میتونید جلوی حرف زدار منو بگیرید صدایش چند لحظه گرفت بعد با صدایی به مراتب گوش خراش در ادامه داد آدم کشها قاتلها این بار میخوام حسابی براتون درد درست کنم از اون رسوایی هایی که هیچ وقت فراموش نمیشه حالا اگه میتونید ساکتم کنید هر قد که دلتون خواست به در و دیوار بکوبید دیگه برام فرقی نمی کنه ترکیب خون و بزاغی را که در دهانش جمع شده بود در جهات مختلف تف می کرد تا جمعیت را از خودش دور نگه دارد آدم کشا باید منو بکشین تا ساکتم کنید یک یادگاری براتون میذارم تا همیشه منو یادتون باشه از این بابد خیالتون جمع باشه تلو تلو خورم به ابتدای راه پله رسید با تمام توانش به نردهها چنگ زد و یک پایش رو روی اولین پله گذشت ها که کمی دل و جرأت پیدا کرده بودند حالا درست پشت سرش ایستاده بودند به من نزدیک نشید وگرنه رو به کسافت میکشم به طرف آنها تف کردو آنها هم به موقع خودشان را عقب کشیدند بهتر مراقب باشید وگرنا لباسهای روز یکشنبهتو رو خراب میکنید پتر بود لبوسکورهای قرمز رنگتون رو که برای آدم کشی استفاده می کنید می پوشیدید. اگه این کارو نکنید خون روی لباساتون باقی می‌مونه و و این سادگی پاک نمیشه. دفعه قبل راحت‌تر بودین، نیست. اما من سیمون شول نیستم. وقتی به اولین پاگرد رسید، روی کف دستش تف کرد و خون روی دستش را روی در سمت چپ مالان آدم کشه، حالا اگه میتونید پاکش کنید؟ قشنگ نه؟ با تحمل دردی زیاد، خودش را به طرف در سمت راست کشاند و دست خون آلودش را روی سطح در کشید و بعد هم روی دستگیره در توف کرد. یکی از دندانهایش همراه با خون از دهانش بیرون افتاد. فریاد زد. اوه،, اوه, اوه آلی شد، همسایه‌ها که درست پشت سر او از پله‌ها بالا می‌رفتند، صداهای تهدید کننده از خودشان در میآوردند. تررکوفسکی پیراهنش را پاره کرد و وحشیانه با ناخانهایش سینه اش را خراش داد. از محل خراشیدگی خون بیرون زد. خون را توی دست چپش جمع کرد و روی پادری ریخت. حالا مجبورید پادری‌ها رو عوض کنید چون هیچ وقت نمیتونید لکه های خون رو پاک کنید. برای اینکه خودش را به پاگرد دوم برساند، روی زمین زانو زد و در حالی که ردی از خون را رو روی راه پله پشت سرش بهجا میگذاشت، خودش رو دست و پا بالا کشید. باید راهپله را هم عوض کنید. خون همه جا گرفته، هیچ وقت نمیتونید تمام این خون را پاک کنید. یکی از همسایه از کنار نرده ها بالا رفت، پای ترکووسکی را گرفت و سعی کرد او را پایین بکشد. دستت از روی ما بردار، آدم کاش! مثل یک گربه وحشی فشفش کرد و یک توفه بزرگ به صورت مرد انداخت همسایه پای ترلکوفسکی را رها کرد و با هر دو دست صورتش را گرفت ترلکوفسکی خندید کس دیگه ای خون نمیخواد؟ چی؟ هیچ کس؟ اما شما اصلایی که تونو خام میخورید عاشق خوراک خرگوش هستید که تو خون خودش آب پس شده باشه و همینطور خون مسیح رو پرستش میکارید اینطور نیست؟ پس چرا کمی از خون حاضر آماده ترلکفسکی را نمیخواهید به پاگرد دوم که رسید هر دو در را مثل پاگرد اول از خون و بزاق خودش آلوده کرد به رغم دستور دکتر پلیسا حالا باتمهایشان را درآورده و به حالت تهدیدکنندهای در دست گرفته بودند کاملا مشخص بود که منتظر فرصتی هستند تا به این مرد دیوانه که روحش توسط شیاطین تسخیر شده بود حمله کرده و او را یکبار برای همیشه ساکت کنند. اما همسایه ها در راه راهروی باریک، راهشان را سد کرده بود و مانع از مداخله‌ی آنها میشد. سعی کردند با هول دادن، راهشان را باز کنند، اما کسی از جایش تکان نخورد. همسایهها که دیگر اختیار از کف داده بودند، خشمگینانه به ترلکوفسکی ناسزا دادند از دکتر و پرستارهایش هم کاری بیشتر از پلیس ساخته نبود. آنها هیچ علاقی نداشتند در این کمدی دردناک نقشی را بازی کنند. همانجا که بودند ایستادند و به تبادل نظر با پلیسها درباره آنچه در حال وقوع بود پرداختند در پاگرد سوم ها ترلکفسکی را محاصره کردند. ابزار و وسایل تیز و برانی در دستهایشان برق میزد ابزاری با لبههایی به تیزی تیغ ریشتراشی درست مثل لوازم اتاق عمل بعد همیگی ترلكفسکی را از میان در آپارتمانش به داخل هل دادند ترلکفسی گفت گرینطور پس شما خون می خواهید موسیازی کجاست؟ آه شما اونجایید عجله کنید موسیازی شما که نمی خواهید از دست بدید سرایدار کجاست؟ صف زیبایی مادامی تور نیست و مادام دیاز می بینم که شما هم اومدید تا سهم خونتون رو بگیرید <تصفيق> ترلکفسی خنده دیوان وارو هیستریکی سردم ابزار برانی که در دست همسایه ها در هوا برقی زدند و نهر خون از پهلوی تررکوفسکی جاری شد. برای دومین دو بار اندام تررکوفسکی چرخ زنان از روی قرنیز پنجره به پایین سقوط کرد و با عبور از باقی سقف شیشهی در حیات افتاد.